عزب الله من الشیطان رجین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و سلَّمَة الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد, محمد. محمد. محمد. محمد. محمد. و, و علی اهل بیت های بین طاهرین سیما بقیه الله فل فال لعنت او عدوا الله العجمین من الان لقیامی يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس مام زمان، سلامت دیگر اینجا کنید. اللهم عسل الله حمد و هلا. خب مفتخریم و خوشحالیم که در جمع دوستان خودم هستیم امشب. این توفیق برای من شد که بالاخره بعد از مدتی در خدمت شما باشم آی موسوی که به من گفتن اصری گفتم که حالا بعد از مدت ها میخوام خواهیم خدمتون باشیم راجب چی صحبت کنیم چه موضوعی رو بگیم که حالا دنبال دارم نباشه خیلی همین امشب بحثمون رو شروع کنیم و جمع کنیم از اون جهت که با همه دوستان قبلا یه گپ گفتی، حالا خصوصی عمومی داشتیم این دفترچهی که حالا دست ما هست کشکول منه خب آره یعنی همه چی توش داره از روایات مختلف احادیث و قرآن و تفسیر و گفتیم میایم اینجا میشینیم بسم الله بگیم باز میکنیم هر جاش باز شد خب البته اونجوری هم نبود همچین ولی خب یک بحثی رو در دو سال گذشته ماه مبارک رمضان مفصلا توی حسینیه ای همین نزدیکا داشتیم با دوستانمون که از خطبه های امیر امیرالمومنین زیبا و بسیار عالی من مختصرا خیلی تیتر بار خب با و این که حالا چند دقیقه هم وقت نداریم که مزاحم شما باشیم این نکته‌ها رو بگیم و ازش رد بشیم خداوند انشاءالله توفیق بده که بتونیم بهشون عمل کنیم چون مهمترین نکته هایی که وجود داره عمل کردنه به این مسائل هست خب برای اینکه شروع کنیم بحثمونو و پیشواز میریم یه سلباتی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوهاللزین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علاللزین من قبلكم تتقون خب روزهای پایانی ماه جمادی و سانی وقتی وارد ماه رجب میشیم مسابقات مقدماتی ماه مبارک رمضان شروع میشه درسته؟ خب از این جهت این سیام هم که گفتیم این آیه مربوط به ماه مبارک رمزان همشین هم خیلی بیواسطه نیست نزدیکی حالا خداوند متعال که می ای کسانی که ایمان آوردید کتب علای کم و سیام همونطور که بر قبل از شما نوشته شده بود روزه بر شما واجب شد کما کتب علی لذینه من قبل کم همونطور که قبل از شما هم روزه بر اونها واجب شده بود لعلکم تتقون باشد که متقی باشید پریزگار شوید نکته ما بحث ما بحث تقویست بریم سر اون کلمه آخر آیه خب که هدف روزه گرفتن رو خداوند متعال میفرماید که حالا که روزه بگیرید همونطور که برگذشتگان هم واجب شد بر شما فرض شد واجب شد، فریزه شد سیام در ماه مبارک رمضان هدف چیز لکم تتقون باشد که شما پریزگار شوید. میخوام با همدیگه صحبت کنیم که تقوا، و متقی کیست یعنی به مراتب این این ماده وقعیت چقدر مهمه که خداوند هدف یه ما روزی گرفتن و مخصوصا تو این ایامی که تو این سالها که به ما به تابستون خورده و خیلی هم سخت شده گرفتن روزه خب هدفی به نام تقوا داره حالا این تقوا چیه که اینقدر مهمه که سی روز روزه میگیریم که باشد که پریزگار شویم خب تو عرب الان تو این دور زمانه چون زبان عرب گذشته رو باقلان مقایسه نکنیم خب الان وقتی ماشیناشون سوار میشن وقتی میخوان را برن این ور بر ور مثل ما که تا پدال داریم اونا هم تا پدال دارن گاز و ترمز و کلاچ خب البته بعضی هاشون دیگه کلاچ هم نداره ماشین اونا بیشتر که بدون که کلاچ خب اما اون پدال وسطی ما که حالا اونا مال اونم میشه سمت چپی بهش میگن تقویه یعنی چی یعنی ترمز این یعنی چیزی که میخواد نگه داره یعنی از همین اشتقاقش از همین ماده واقعی است خب که ماده تقوا میشه درسته از این جهت خداوند برای ما هدف روز گرفتن ما رو تقوا قرار میدهت که مهم این هستش عزیزان من که ما جلوی خودمونو در مقابل بعضی از موارد بگیریم روزه میخوایم بگیریم خب آب که حلاله دیگه خوردن آب که دیگه امروز شما صبح آب خوردید روز سیوم شعبان ساعت دوازده ظهر آب بر شما حلاله اما دوازده ظهر روز اول ماه رمزون یه روز گذاشته بسیار ساعت این بر شما حرام شده یعنی شده مثل عضر میخوام مثل یه نجاستی که اگه بخوایم می ما سر بکشیم. درسته؟ هیچ فرقی نداره عملا یعنی همون شاید حد و تاذیرات روز هم اگر در مل آن باشه داشته باشه دقیقا مثل خدای نکردایی که کسی بخواد نجاستی رو مثلا مصرف کنه. حالا ما باید جلو خودمون رو بگیریم کلمه پرهیزگاری نه اینکه حالا خیلی درجات بالاش رو بیایم همین درجات خودمون رو نگاه کنیم. می‌خوام جلو خودمون رو بگیریم. چطوری جلو خودمون رو بگیریم؟ مواظب خودمون باشیم. چه تأثیری این برای ما داره بچه‌ها؟ حالا این رو شما باید تعمیم بدید توی همه موارد دیگه، خب؟ یه وقتی خدای نکرده توی یک محفل قرار میگیریم تمرین دیگه مهرمزون خب؟ توی یک محفل قرار میگیریم همه دارن خود خب، یک گناهی رو انجام میدن. یه معصیتی رو دارن میشن. اونجا اگه درست تمرین نکرده باشیم اینجا نمیتونیم درست عمل کنیم بهش یعنی نمیتونیم جلو رو بگیریم روز معلم نزدیک استاد بزرگوار شهید متحری که انشاءالله خداوند نور به قبرشون ببارد و جهت متعالی شدن روحشون شما یک سلوات خط کنید یک نظریه جالبی دارن در مورد تقبا خب خیلی‌ها گفتن همین مطلبی که من گفتم مثل اون قضیه طرمازی که گفتم اینکه جلو خودمون رو بگیریم به واسطه تقوا یعنی خود تقوا یعنی که جلو خودتون رو بگیرید ایشون نظرش این هستش که این یعنی که حالا قبل از اینکه نظرشونو بگم تقوا یعنی جلو خودتونو گرفتن یه کار عدمیه یه کاری که انجام نمیخوایم بدیم حالا اگه من درست بتونم این رو قضیه رو به شما منتقل کنم جا خب حالا نظر شهید مطهری این نیست میفرماید که حالا من تعریفش هم برای شما می خونم همه علما میگن که این یک جلوگیرییه یعنی یه کاری که می خواهم انجام بدیم انجام نمیدیم عمل ادمی میشه خب میتونی آب بخوری آبو, آبو نمیخوریم میتونی مثلا اون گناهو انجام بدیم انجام نمیدیم یه کار ادمی است یعنی انجامش رو در مقابل عدم انجامش قرار میدیم خب ایشون میفرماید که نه ادمی نیست بلکه یه کاری است که اسباتیه یعنی ما اون کار را یه کاری داریم انجام میدیم نه اینکه فقط به واسطه اینکه یه کاری رو انجام ندادیم به ما گفتم ما متقی شدیم ببین این درجهش میره بالا خیلی با هم فرق میکنه شما الان یه وقتی میتونید الان حاضر بشید این پله ها بیایید پایین اینجا بشینید نمیاد درسته این کار فقط انجام ندادید کار خاصی انجام ندادید میتونید یه گناهی رو انجام بدید نمیکنید پس کار خاصی ما انجام ندادیم فقط این عدم رو انجام دادیم قدم نذاشتیم تو اون اتاق تو حیعت نیمدیم اون گناه رو انجام ندادیم ایشون میفرماند این فقط این نیستش که شما یک کاری رو انجام نداده باشید بلکه یه درجه بالاتری داره تقوا اون هستش که ما یه کار اثباتی انجام دادیم همین نرفتن ما این یعنی که ما کف نفس کردیم ما با رو خودمون یه کاری انجام دادیم همین صرف عدمش نیست بلکه حالا من تعریفش رو برای شما بخونم میشون میفهماد تقوی یه نیروست نه اینکه یه عدمه یه نیروی عدمه انجام دادن یه کاری یک نیروی معنوی و روحی است که بر اثر ممارسد و تمرین پدید میآید. خوب، خب بله شخصی خابیده این مثال بزنیم شاید باز بشه پس شخصی خابیده توی اتاقی دارن اون اتاق گناهی هم انجام میدن خب برای اون شخص خوابیده که گناه نمی نویسن می نویسن؟ نه اونشون ایشون نمی دونه اصلا متوجه نیست در اطرافشون آدم نائم خوابه دیگه اطرافشون نمی دونه که یعنی چه اتفاقی داره میافته خب این یعنی عدم یک کاری اون کسی هم که نرفته تو محفل گناه کسی که انجام نداده یعنی فقط اون کار نکرده این درجهش یه مد میفرماید ایشون که فقط مثل خوابیده نیست کسی که تقوا انجام داد خب بلکه ممارست کرد یک نیروی رو در خودش ایجاد کرد اثبات کرد به وجود آورد بلکه عدمی نیست تقوا یک چیزی وجودی هست چون بعضی ها فکر می که تقویه یعنی این که آقایی کاری انجام ندیم همین که ایشون گفت پرهیز کار باشیم پرهیز کنیم از یه امری شهید بزرگوار استاد مطهری میفرماید که نه این یک امر وجودی است بعضی انسانها با ممارسات با تمرین در خودشون این امر رو به وجود میارن که جلوگیری میکنه این امر برای اونها از انجام خدای نکرده گناه این می شود تقوا همین هست ارزش اون قضیه که خداوند متعال در اول عرایزم عرض کردم خدمت شما میفرماید سیام انجام بدید روزه بگیرید تا لالکوم تتقون پریزگار باشید تا اینکه برسید به این قدرت مگر نه اگر خیلی راحت با عدم یک کاری قرار بود که ما پریزگار باشیم خیلی ها مثلا طرف عرض کنم خدمت شما موقعیتش براش پیش نمیاد هستند. خیلی وقتا برای خیلی ها برای موقعیت خیلی گناه نمیاد پولی دستش نمیاد یا مثلا اون محفل گناه براش پیش نمیاد اما نه این وجود تقوا که یک امر وجودی و اثباتی است این برای اون کسی به وجود اومده که موقعیت گناه براش به وجود اومده خب بعد نرفته سراغ گناه این طرف رو ما باید بگیم است این ارزش داره برای ما. خب حالا بیایم سراغ زندگی امروزی خودمون بچه ها ببینیم اسباب گناه چقدر دم دستمون مهیا یه مروری خلاصه ای بکنیم و ارزمون رو مختصرا تموم کنیم. من میخواستم در مورد وراق نزدم صفحه بعد بحث ما در مورد افرادی بود که به اونها صفات متقیم میشد میره وارده حالا بحث خود به امیران میشه اما همینقدر بحث باشه برای امشب اگر حالا بون شبای آینده من بحثو حالا هفته های آینده اما این نکتهش عرض کنم خدمت شما بیایم سراغ امروز خودمون ببینیم کجا هستیم یک جوان دبیرستانی یک جوان راهنمایی، یک نوجوان دبستان یک جوان دانشگاهی یک جوان کارمند کارگر تو هر قسمتی که هستیم الان جمعمون جمع, جمع جوان هاست دیگه درسته اسباب گناه برای ما متاسفانه محیاست خب از توی خیابون گرفته تا تو جیبمون جیبمون چیه؟ کی میتونه بگه؟ خب موبایلمون درسته؟ حالا تا اینجا توی ذهنمون خب من اگر متقی باشم من اگر این تقوا رو در وجود خودم ایجاد کرده باشم که الحمدلله در بین ما همه این صفت رو دارن خب انشاءالله خب اگر اون اسباب گناه چه تو جیبم باشه چه تو دستم باشه دیگه سمتش؟ نمیرم یعنی لازم نیستش که من بود دوام دنبال یه چیزی رو که به دست بیارم دیگه خب این اون اصل مطلبی بود که من دوست دارم امشب با همدیگه روش بحث کنیم اینکه حالا تو این دور زمونه که ما داریم زندگی میکنیم چقدر اسباب گناه برای ما نزدیک شده چقدر دم دست شده که پیغمبر فرمود آخر زمان است که منکرات در چشم مردم حرام ها حلال میشه و ارز کنم خدمت شما حلال ها حرام میشه یه مثال خیلی عادی بزنم که خیلی مبتلا بهه اصلا ما نمیدونیم اقا این حرامه دیگه از بس انجام دادیم <تصفح> الان میگه هاج آقا بس شما میگه میخندید شاید بگید که بابا هاج آقا ولمون کن بابا خب یعنی چی خب یه چیزی که مثلا انقدر عادی شده در این آخر زمان حرامی بوده که حلال شده دی که اصلا عادی شده یعنی همه فکر می‌کنن مثلا نمی‌دونن این قضیه حرامه من خب امره معروف بگم نه مستحب با اینام نیست حرام بوده حرمت داره همه مراجع بل اتفاق حرمت تراشیدن ریش رو درسته اعلام میکنن خب ولی ما می‌بینیم اصلا انقدر عادی شده که اگه کسی نتراشه ریشه شو خب اینکه بهش میگن که دیگه شما چرا عرف جامعه انجام ندادی خب تو جامعه اسلامی ما این رو میبینیم متاسفانه این یکی از اون مثال هست. حالا موشه کنیم متاسفانه میاد بالا یکی یکی مشکلات میاد رو خب این رو دیگه واگذار میکنیم به خودتون برید نگاه کنید چون به فراخور اشخاص هست متاسفانه منکراتی که معروف شده معروف هایی که بدتر از این, این معروف هایی که منکر شده این موردی بود که ارز کدم معروفی بود که منکر شده یعنی کسی که دیگه رویش میذاره بهش مثلا یه جوری دیگه نگاه هم کنن خب ما تو محیط دانشگاهی مثلا یه وقتی میریم بچه ها اگر یه وقتی تحریشی داشته باشن با مسخرگی بهشون نگاه میکنن همکلاسی هاشون حفظ حجاب برای یه بیرون تار موش درسته؟ خب، یا مثلا نشان ندادن بدنش این یک معروفی است اما متاسفانه تو محیط کشور ما این شده منکر اگه کسی پوششش کامل باشه لقب‌های آنچنانی امول و چه و چه بهش میدن خب درسته ولی تو محیط دانشگاه که میریم یا مثلا محیط دبیرستان من به فراخور کارم تو در منطقه دو چند تا دبیرستان دخترانه کار کردم خب البته مجتمع هم کار کردم خب همین امسال توی یک از مدارس فرزانگان تو های منطقه دو که هستم اونجا مثلا میبینیم که اکی دخترها نمیدونن جهلم دارن عزیزان من خب آستینشو که لا میزنه میاد بالا خب بعد با همین وضعیت هم میاد تو نماز خونه. نماز میخونه هجاب شرط نمازه درسته بچه همه میدونن دیگه این بند خوددا نمیده با همه آسانی لازده اومده نماز میخونه بهش میگیم که عزیزم من این نمازی که زحمت کشیدی ضوعو گرفتی حالا اومدی با اون سختی یکی گفت نه نماز سختی نداره نه نماز سختی هم داره اگه سختی نداشت که خدابا قرار نمیداد این رو خداوند من تو این سختی ها رو برای ما قرار داده که ما خودمونو با اینها امتحان کنیم بله شیرینی داره معاج ممنه ولی وقتی به اون درجه رسیدیم اینشاالله که می خب برگردیم سر اصل بحثمون بحث تقوا این بود که یک امر وجودی است که در وجود ما انشاءالله در این دوران جوانی شروع میکنیم رو خودمون ممارسات تمرین این امر به منحسه ظهور میذاریم به وجودش میاریم که الحمدلله بهترین موقع دورانی که برای تمرین و ممارست و به منصه ظهور رسوندن تقوا عزیزان من میگم که بهترین دوره دوران جوانی است تو این دوره‌ای که شما هستید یعنی مثل یک نهالی میمونید که به هر طرف شما رو بپیچونند به اون طرف میتونید حرکت کنید دیدید یه نهال تازه به دوران رسیده ای رو اگه چوب بیاری بهش کنی چوب کج این کج رشد میکنه اگه چوب به ساافت میارن معمولا بهش میزنن که این ساافت بره بالا خب دوران من و شما دوران جوانی من و شما مثل همین نهال میمونه حالا اگر ما این موبایلی که تو جیبمون گذاشتیمش اگر سراسر توش خدای نکرده چیز خاصی باشه مثل همون چوب کج میمونی که به این نهال چسبوندیم این کج میره بالا خب اما اگه نه اینو پاک کنیم چیزی توش نباشه خیلی رک داریم خودمونی با هم صحبت کنیم جمع خودمونیه دیگه درسته آسه خب یه صلابات خط کنیم اللهم صلابات محمد عجل. محمد عجل. محمد عجل. محمد عجل. بعضی از آقا حمد ما رو دوست دارن خب میدونن دونستن یه همین بچه های جمع خودمون درست آقا حمد خواستن یه بگون مرافیم وسط هفته حاجه ها بگن که بابا خب بیایم یک تعملی از امشب که اومدیم تو هیئت بیت و زهرا به نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیه ها نام گذاشته شده یه عهدی با خودمون ببندیم بگیم که حالا امشب که رفتیم هرچی دانلود کردیم دیلیت درست شد؟ خب به خاطر این که این که گذاشیم تو جیبمون وست نه اون شاخه کجی بشه که بخواد ما رو کجماوج کنه این اون اون شاخه سفته بشه که ما رو صاف باشه که ما رو صاف ببره بالا بشه وسیلهی برای تقوای ما انشاءالله که همینطور باشه یک سلواتی خط کنید <تصفيق> مرحوم فتال نشابوری نقل کرد آخرین عرض کنم ملاقات و آخرین مذاکره بین دو زوج بزرگوار خب حضرت زهرا سلام الله علیه و امیر علی علیه السلام رو خب زندگی حضرت زهرا و امیرالمومنین در واقع الگوی تمام زندگی‌های مشترک است ما یه نگاه کنیم به این مذاکره به این دیالوگ به این صحبتی که بین این دو بزرگوار رد و بدل شده در آخرین لحظات بیماری که حضرت زهرا و سلام الله علیها تو بستر بیماری بودند تو اون شدت جراحاتی که بر اون بزرگوار وارد شده بود خب یه مهیا شده بودن دعا کرده بودن که خداوند وفات ایشون رو تجیل درش قرار بده صحبتی که بین این دو بزرگوار رد و بدل می شود این هست است از جانب حضرت زهره سلام الله علیها به پسر عموی خودشون امیرالمؤمنین. و اون هم این بود که یا علی در شب قسل بده مرا در شب کفن کن مرا و در اون تابوتی که دختر دخترعموی ما آماده کرده مرا حمل کن به سمت قبرستان. آرزو کنم خدمت همه شما عزیزان خودم اینکه چرا این سنت رو حضرت زهرا قرار میدهد و اون هم این هست و سفارش میکنم به تو ای پسر عمو یا ابل حسن اینکه اونهایی که بر من ظلم روا کردند و حق مرا خوردن و پایمال کردن حق مرا بر جنازه من نماز نخونند و حتی قبر مرا ندونن کجا هست که بخوان ادعایی داشته باشند بر قبر دختر رسول خدا چه میشود که چند ماه از در گذشته رسول گرامی اسلام میگذرد دختر ایشون اینگونه وصیت میکنه امیرالمؤمنین در مقابل چه میخواهد از حضرت زهرا چه صحبتی دارد با ایشون میفرماید که زهران جان وقتی مرا ترک کنی فرزندان تو از من سوال میکنند مادر کجاست؟ چه پاسخی برای اونها در نظر داری؟ السلام علیکم، یا عبا عبدالله و علی الارباه انتی حلت بفنایک علیکم انی سلام الله ابدا ما بغی تو همه بخونن ذکر سلام امام حسین و نهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم ان شاء الله به زودی زود دست جمعی همین بچه های حیعت بریم کربلا لزیارتکم السلام علی و علی الحسین و علی